Up up up گوانئی فارسی بناوی کردگاری بخشندو و و صلاو رزی تایبات بو اوا وگرانو و برزی برنامه گوانئی فارسی خوش حالین که هوری برنامده کن. رامین امر رو نخوش و سردانی متبی پزیشگ آکت. بالام دوا و درمانکانی لا دواخان ور لبر ل برای که لونی زیکانه دواخان لینی. دواني محمد تشیب و دواخانو راستای رامینیج ور دگری. او کمیک جانسری هیا. لگال پزیش کو فرمان بری دواخان که قصد دکت. تو بشەکە گو دەگرین لا ووش نوکان اگر به پیویست تنزانی وشکان لای ختان یاد داشت کرد روزتان ب خیر روزتان بخیر. رشتن باش خانم خانم خانم نسخه نسخه راته شما دارید شما دارید حنم بفرمایید بفرمایید فرمون دوستم است دوستم است برارم. لطفا، لطفا تکیه بدهید بدهید بدن آقای دکتر آقای دکتر آقای دکتر چشم چشم بصرت دیروز دیروز دیروز از دیروز از دیروز لدوینیو نیوا سردرد سردرد جان سر من دارم من دارم همه من میدهم من میدهم ایدم بسته بسته بسته آسپیرین آسپیرین آسپیرین روزی روزی رژه س س س قرص قرص حب بخورید بخورید خو ممنون ممنون سپاس خمیر دندان خمیر دندان کرمی دندان مسواک مسواک مسواک می من میخواهم من میخواهم دمیوی چه خمیر دندانی چه خمیر دندانی چه کرمکی دندان شما میخواهید اینجا شما میخواهید اینجا دتانوی لره ویترین ویترین جامخانه کوچک کوچک بچوک خمیردندان کوچک خمیردندان کوچک کرمی دیدانی بچوک چه رنگی چه رنگی چه مسواک چه مسواک چه رنگی فرقی نمی کند. فرقی نمی کند فرق نکد آبی آبی شین مسواک آبی مسواک آبی مسواکی شین آماده آماده آماده دارو دارو دوا. داروی شما داروی شما دوای چهار هزار چهار هزار. چوار هزار تومان تومان تمن چهار هزار تومان می شود چهار هزار تومان می شود دکته هزار تمن پول پول پر صندوق صندوق صندوق متشکرم متشکرم سپاس دک. خوشه وستان استاش ده ناو دواخانكو جوه دگلين لا و تویجي نیوان اوان سلام خانم روزتان بخیر. سلام بفرمایید. نسخه دارید؟ بله بفرمایید. این نسخه دوستم است. لطفاً نسخه را با آقای دکتر بدهید. چشم. ببخشید آقای دکتر من از دیروز سردرد دارم. یک بسته آسپرین به شما می دهم. روزی سه قرص بخورید. ممنون. ببخشید خانم یک خمیر دندان و مسواک هم میخواهم. چه خمیر دندانی میخواهید؟ بفرمایید اینجا، خمیردندان و مصفاک ها در این بیترین است لطفاً این خمیردندان کوچک را بدهید و این مسواک را مسواک چه رنگی می خواهید؟ فرقی نمی کند، لطفاً یک مسواک آبی بدهید بفرمایید، داروی شما آماده است، داروها با مصفاک و خمیردندان و آسپرین چهار هزار تومان می شود لطفاً پور را به صندوق بدهید متشکرم. عذرا، امتحانیج جوی بو گرین بلان با و توجه کدگرین به ورگراني کردیم. سلام خانم روزتان بخیر. سلام خانم روزتان بخیر. سلام خانم روش باش سلام، بفرمایید نسخه دارید سلام بفرمایید نسخه دارید سلام فرمو راچته او هیه؟ بله بفرمایید این نسخه دوستم است بله بفرمایید این نسخه دوستم است. بله فرمو اما راچته ای حک من لطفا نسخه را موقای دکتر بدهید. لطفاً نسخه را با آقای دکتر بدهید. تکیه راچتک بده با آقای دکتر. چش. ببخشید آقای دکتر من از دیروز سردرد دارم. چش. ببخشید آقای دکتر من از دیروز سردرد دارم. بسر چو ب بورا آقای دکتر من لدوینه و جان سر مهی. یک بسته آسپرین به شما می‌دهم. روزی سه قرص بخورید. یک بسته آسپرین به شما میدهم. روزی سه قرص بخورید. بسته یک آسپرین تیپی ادم، روزی 3 حبی لپخو. ممنون. ممنون. سپاس. ببخشید خانم. یک خمیر دندان و مسواک هم میخواهم. ببخشید خانم. یک خمیر دندان و مسواک هم میخواهم. ببوراه خانم کرمی کی دندانو مسواک کیشم دیوچ چه خمیر دندانی می‌خواهید چه خمیر دندانی می‌خواهید چه کرمی کی دندان دیو بفرمایید اینجا بفرمایید اینجا فرمو بوئر خمیر دندان و مسواک‌ها در این ویترین است خمیر دندان و مسواک‌ها در این ویترین است کرمی ددن و مسوک کن جام جمخاندن لطفا این خمیردندان کوچک را بدهید و این مسواک را لطفا این خمیردندان کوچک را بدهید و این مسواک را تکایی ام کرم ددن بچوک او ام مسوکم پرده مسواک چرنگی میخواهید مسواک چرنگی میخواهید مسواکی چرنگید فرق نمی کند فرقی نمی کند. فرق نکت. لطفا یک مسواک آبی بدهید. لطفا یک مسواک آبی بدهید. تکه مسواکی شینم پیدا. بفرمایید داروی شما آماده است. بفرمایید داروی شما آماده است. فرمو دوکت آماده. داروها با مسواک و خمیر دندان و آسپیرین چهار هزار تومان می شود. داروها با میسواک و خمیردندان و آسپیرین چهار هزار تومان می شود. دواکن به میسواک و کریمی دیدن و آسپیرینکه و دکات چهار هزار تومان. لطفاً پور را به صندوق بدهید. لطفاً پول را به صندوق بدهید. تکای پرکه بده به صندوق. متشکرم متشکرم سپاس دکم. محمد بولای صندوقی پاره چیو پاری د واکان ادات لتهنیج صندوقه کا رکلامی زور چشنه کریم او شامپو کلوپلی دبینره محمد یک یک لیم بروشورانه هلدکری صندوقدار محمد بانک فاکتور د واکان ادات به محمد محمد یوش سپاسی لاکاتو مالاویلا پیسیشککاش اکات لریگادا سواری تاکسی دبیتو با تو به خویندنی بروشوره رکلامی کان پیسر بیت که ل ایران ام گشتسته برهم دی او پیشتر نی دزانی ایران ل برهم هنان زور چشنه مادس تو شو رو خوینی اونده پیشکوتو برهمکانی اونده هم رنگ خوۆشەویستان بەم جۆرە گەیشتیە برنامه بەرنەمەی فارسی تا برنامه یکی و به یکیش نوی یکی دیکه همولایک تن به خواهی گروه و هیوای دارین که تو خوش لپیش دابید.